دوستان، ممکنه که یه نفر توی سر شما بزنه و این شما رو میرنجونه. اما آیا باید تلافی بکنیم؟ به نظر شما، وقتی کسی به ما بدی میکنه چی کار باید بکنیم؟ سلام و به کلاس دیگه ای از دانشکده یک کتاب مقدس خوش اومدین که در اون ما تعالیم ایسای مسیح با عنوان سر سرکو رو بررسی میکنیم. خب، بر اساس تعالیم ایسا ما باید وقتی کسی بر گونه راست ما میزنه، گونه چپمون رو نیست به طرف اون برگردونیم. این چه نوع تعلیمیه؟ خب، معلم ما در درس امروز توضیح خواهد داد. پس با هم به دقت به درس امروز معلممون با عنوان به خدا گوش میکنیم. شنیدید که گفته شده از چشمی به چشمی و دندانی به دندانی. لیکن من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید. بلکه هر که به رخصاره راست تو تپانچه زند دیگری را نیز به سوی او بگردد. و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز به دو وا گذار و هرگاه کسی تو را برای یک مایل مجبور سازد، دو مایل همراه او برو. هر کس از تو سوال کند به دو ببخش و از کسی که قرض از تو خواهد روی خود را مگرداد. شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نمو و با دشمن خود ادابت کن اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان تاله میسازد و باران بر عادلان و ظالمان میباراند زیرا هرگاه آنانی را محبت نمایید که شما را محبت می نمایند چه عجر دارید؟ آیا باجگیران چونین نمی کنند؟ و هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه فضیلت دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است. برخی اینطور احساس می کنند که این دو عبارت از دشوارترین عبارات عهد جدید هستند. هرگاه که اعلام کنید که قصد دارید موعظه سرکوه رو آیه به آیه تعلیم بدید افراد بی منتظر هستند که ببینن شما درباره آن چه میگویید. آنها میخواهند ببینن تفسیر شما از این آیات چیه. خب در که این آیات بسیار دشواره. در حقیقت، تا وقتی که مسائلی را در حوزه دید خود قرار ندید، تا وقتی که بر روی حقایقی مشخص تمرکز نکنید، معتقدم که در که این آیات غیر ممکن خواهد بود وقتی به این عبارت برخورد میکنید نکاتی هست که باید آنها را مد نظر قرار بدید بر آنها تمرکز کنید پیش از هر چیز به یاد داشته باشیم که عبارت مورد نظر در کدام قسمت از معزه سرکوه قرار گرفته به یاد داشته باشیم که معزه سر با فهرستی از سلامتی روحانی آغاز میشه این خوشا از ما دعوت میکنند که به اعماق درون خود نگاهی بیاندازیم و ببینیم که آیا با فیض خدا همان دیدگاهی که خدا از ما انتظار داره داریم؟ اگر قرار بر این است که ما نمک و نور جهان باشیم، داشتن این دیدگاه برای ما ضروریه. این دیدگاه قسمتی از راه حل عیسی و پاسخ او به تمام مشکلاتیه که مظهر آن جمعیت حاضر در پایین کوه، کسانی که همه ی انواع مشکلات رو داشتن. عیسی که در خوشا به به ما گفته به درون نگاه کنیم، بعد از اون میگه به اطراف خود نگاه کنید. آنچه او بیان میکنه وسیع ترین قسمت متا باب 5 هست. در واقع مبحث با آیه یازده آغاز میشه. اون که از مسائلی درباره شمع بر روی شمدان و نور و نمک جهان بودن صحبت میکنه. اون جایی که از مسائلی درباره شمع بر روی شمدان و نور و نمک جهان بودن صحبت میکنه، شرح حالی از وضعیت درونی شاگرد نیست، بلکه عیسی کنون با ما صحبت میکنه وقتی به آیه یازده و ادامه اون میرسیم درباره شاگرد در دنیا صحبت میکنه ما گفتیم که وقتی به این تعلیم رو بررسی میکنید مسائلی همچون بحرانی که مسیحی شدن به همراه داره که بر طبق متا پیامدهای این بحران آنقدر که برای خداوند اهمیت داره برای شاگرد اهمیت نداره آیا شاگرد باید قسمتی از راه حل خداوند یا قسمتی از پاسخ خداوند باشه؟ این موضوعی که بررسی میکنیم چهارچوبی که معزه سرکو در اون بیان میشه در ها ما شخصیتی را که مسیحی بودن به همراه داره میبینیم اما بعد از اون از آیه یازده به بعد تا انتهای به پنج شاهد این چالش هستیم که این نوع شخصیت بر فرهنگ خود تأثیر میگذارد عیسی در آیات تا 20 تشکیلات مذهبی رو به چالش میکشه. وقتی میگه هر آنچه که میخوام به شما تعلیم دهم موافق کلام است، اما نه موافقه تشکیلات مذهبی. و به همین شکل پاراگراف به پاراگراف شش پاراگراف با هم ایساع میگه آنها به شما چنین گفتند اما بگذارید من حقیقت را به شما بگویم. شش پاراگراف در متاباب پنج با عبارت به شما گفته شده است، اما من به شما میگویم شروع شده. اینها بسیار رابطه ای هستند و به شاگرد نشان میدهند که چگونه دیدگاه های زیبا و واقعیت زندگی تازه در مسیح را به برادر دشمن زنان همسر، قسم خوران، افراد بد و همسایه و دشمنان انتقال دهند علاوه بر انجام این و این به شدت اقلانیه در این قسمت از باب 5 خداوند همچنین به ما نشون میده که چگونه به کتاب مقدس نزدیک بشیم و چگونه کتاب مقدس رو در زندگی خود و در چارچوب تمام روابطی که نام بردیم به کار ببندیم. او تفاوت میان شریعت مکتوب و روح شریعت رو به ما نشون میده. عیسی با ذکر مثال و حکم به ما تعلیم میده پیش از آن که شریعت خدا رو در زندگی دیگران به کار ببرید، اون را از میان منشور محبت خدا عبور بدید. از میان منشور روح شریعت، از میان منشور هدف شریعت و سپس آن رو برای خود دیگر افراد به کار ببندی در این دو پاراگراف آخر باب پنج تعلیمی داریم که بسیار اقلانی هست. اگر کسی به صورت شما سیلی بزنه اگر کسی بر شما اقامه دعوا کنه چه دوست شما باشه چه دشمن شما خواهید دید که این عمل به شدت اقلانیه و همونطور که گفتیم قسمت دشوار این باب محسوب میشه و چارچوب متن باید با مطالبی که گفتیم جور در بیاد. موضوع مهم دیگری که در حین تفسیر این عبارات دشوار باید بر اون تمرکز کرد، اینه که تمامی تعالیمی که بالای کوه بیان شده خطاب به شاگردان هست و نه اون جمعیت کسیر. داستان در پایان متا باب چهار با جمعیتی کسیر و با تمام مشکلاتی که دارند آغاز میشه، اما به یاد داشته باشید که عیسی از میان آن جمعیت شاگردان خود را به کنار دعوت میکنه. و تعلیمی که ما اون رو موعظه سر کوه می نامیم به شاگردان داده میشه. اونها به همراه عیسی بالای کوه بودند در حالی که به جمعیت کثیر پایین کوه نگاه میکردند. تمام موعظه سر کوه رو باید بر مبنای این دیدگاه نگریست. اونها در کنار هم به اون جمعیت و تمام مشکلات آنها که نماینگر دنیا و تمام مشکلات آن هستند می نگرن. تمام تعالیم باید از این منظر دیده شوند. عیسی میگوید این تعلیمی است که به شما نشان می‌دهد که چگونه سهمی در پاسخ من، راه حل من به تمامی کسانی که پایین کوه هستند داشته باشید. تعلیم برای شاگردانی است که با حضور خود در بالای کوه می‌گفتند که می‌خواهند سهمی در راه حل و پاسخ به مشکلات داشته باشند. همین حقیقت که آنها شاگرد نامیده شدند به این معناست که آنها در سطح بالایی از تعهد به عیسی بودند. یک شاگرد کیه؟ یک شاگرد کسیه که میخواد قسمتی از پاسخ و قسمتی از راه حل باشه یک شاگرد میخواد هرچی که داره قربانی کنه شاگردان میخواهند که عیسی مسیح و این معموریت رو که راه حل و پاسخ باشن بر تمام افراد زندگی خود مقدم بشمارن لغا باب 14 بهای شاگردی و یا شاید به قول شما تعهد شاگردی رو به ما نشون میده و همچنین هر یکی از شما که تمام مایم نک خود را ترک نکند نمیتواند شاگرد من شود. عیسی گوید اگر شما نخواهید صلیب خود را بردارید و برای من بمیرید نمیتوانید شاگرد من باشید. اگر نخواهید مرا در اولویت قرار دهید بیش از تمام افراد زندگیتون شوهر، همسر، پدر، مادر، بچه ها و والدین نمیتونید شاگرد من باشید. من معتقدم وقتی به این عبارت دشوار نزدیک میشیم باید این نوع آیات درک بشن در غیر این صورت هیچ چیز از آنها نخواهیم فهمید اگر با این تفکر به این تعلیم نزدیک بشیم که این اولین قانون تمدن حفاظت از خود هست هیچگاه این تعلیم رو درک نخواهیم کرد من معتقدم اون چیزی که الان میگیم کلیدی برای درک دو پاراگراف آخر باب پنج متا هست که شاید شما اون رو مرگ نفس یا انکار نفس بنامید. پولوس رسول تعهد شاگردی رو به خوبی درد کرده بود وقتی که میگفت با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم لکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من زندگی میکند و زندگانی که الحال در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد با مسیح مصلوب شدن به چه معنا هست؟ به این معناست که صلیب خود را بردارید و به دنبال او روانه بشید در باب دوازدهم از انجیل یوحنا وقتی عیسی با صلیب خود روبرو شد گفت اگر دانه گندم که در زمین میافتد نمیرد تنها ماند لیکن اگر بمیرد ثمر بسیار آورد پس تمام دعای او این هست پدر اسم خود را جلال بده و صدایی از آسمان می گوید جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد یک شبان امریکایی به نام دکتر توزر بر اساس یوحنا باب دوازده گفته همه ما باید این دعا رو بخونیم پدر خود را جلال ده و گواه را برایم بفرست غیر از این هیچ چیز پدر فقط خود را جلال ده اگر این را بنیاد قرار دهیم متوجه میشیم که محال با مسیح مصلوب شد و در عین حال زنده ماند اما همون گونه که پولس در دوم قرنتیان باب 5 میگه از این به بعد برای خیشتن زیست نمیکنیم. بلکه برای او که مرد و برخاست، اگر این مطلب جایگاهی در فکر ما داشته باشه اون وقت این عبارات برای ما قابل فهم خواهند بود اگر نزد مسیح آمده ایم که قسمتی از راه حل و قسمتی از پاسخ او باشیم در واقع به او گفته ایم می خواهم برای این بمیرم به من نشان بده که کجا باید بمیرم و چگونه بمیرم برای چه و برای چه کسی کجا باید جان خود را بدهم و آن را برایت قربانی کنم. سپس این تعلیم قابل فهم خواهد بود. عیسی میگوید گوش کنید اگر میخواهید بر جهان تأثیر بگذارید و نمک زمین و نور جهان باشید پس اگر شما را زدند مقاومت نکنید. روی دیگر را نیز برگردانید. من میدونم که یهودیان از روپوش خود به عنوان پتو در موقع خواب استفاده می می‌کردند. بنابراین گرفتن روپوش شخصی دیگر غیرقانونی محسوب می شود. اما عیسی میگوید بگذارید آنها روپوش شما و حتی لباس را نیز بردارن و اگر یک سرباز رومی شما را رو مجبور کرد بارش رو یک کیلومتر ببرید دو کیلومتر ببرید وقتی شخصی چیزی از شما بخواهد آن را بدهید اگر شخصی قرض از شما طلب کند به او قرض دهید اگه اگر به این نوع تعلیم نگاه کنید و بگید اگر چنین بکنم همه چیز را از دست می دهم پس این تعلیم قابل فهم نخواهد بود اما شاگرد حقیقی عیسی مسیح که بهای شاگردی و تعهد شاگردی را می داند، همان لحظه همه چیز را از دست داده است او همکنون نسبت به خود مرده و خود را انکار کرده است و با این اوصاف گویی که چیزی برای از دست دادن ندارد. من می دونم که جاهایی در دنیا هست مثل اتیوپی که وقتی مردی به جنگ میره خانواده ای او برایش مراسم خاک سپاری برگزار میکنن وقتی او خانه رو به سوی میدان جنگ ترک میکنه در واقع مرده است و گویی که چیزی برای از دست دادن نداره او پیش از آنکه خانه رو ترک کنه مرده وقتی بیش از چهل سال پیش پنج میسیونر در کویتو اکوادور شهید شدند همسران اونها گفتند که شوهرانشون زمانی که در کالج بودند مردند زیرا زمانی که او در کالج بود و با این بحران بزرگ در زندگی خود روبرو شد، او تصمیم گرفت که صلیب خود را برداره و بر روی اون جان بده. پس او زمانی که در کالج بود یه نوع مراسم مردن برای نفس خود را انجام داده بود. او گفت همسرش سالهاست که مرده پیش از آن که به معموریت بره. من معتقدم که ما برای درک این نوع تعلیم باید بر این موضوع تمرکز کنیم. در پاراگراف اول ایسا یک عبارت منفی هست. میگوید آنچه که به شما میگویند اخلاقیات قدیم است و در کتب مقدسه یافت میشه اما همانطور که دیدیم محدود به انتقام چشمی به چشمی و دندانی به دندانی اما من به شما میگویم و سپس تعلیم خود را بیان میکنه نیروی تعلیم و روح تعلیم و عیسی میگه روح شریعت همیشه این بوده باید از این کوه پایین برید و به مردم پایین کوه بگید زندگی مسابقه موش توانی و یا جنگ سکه ها نیست زیرا که موش و سگ نیستیم باید نزد مردم کوب برید و به اونها بگید که اینطور نیست پاراگراف دوم آیات 43 الا 48 یک عبارت مثبته. شنیده اید که گفته شده همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود اداوت کن خب قسمت هایی از عهد عتیق میگه که همسایه خود را دوست بدار اما در هیچ قسمت از عهد قدیم نوشته نشده که با دشمن خود اداوت کن از کل عهد قدیم این طور استنباط میشه مانند مزامیر که میتونید دعاهایی رو در اون پیدا کنید که میگه اگر خدا را محبت کنید از گناه متنفر میشید و همچنین داوود که مردی با ایمان هست میگفت که از دشمنان خدا نفرت دارد اما هیچ فرمانی نیست که بگه از دشمن خود متنفر باشید همونطور که در حکم طلاق میبینیم. هیچ قسمتی نیست که موسی به قوم فرمان طلاق بده او تنها گفت که اگر قصد طلاق دارید انصاف داشته باشید و به او حکم طلاق بدهید و شرایط و عوامل طلاق رو در اون شرح بدید واقعیت این بود که او حکم به تلاق نمیداد بلکه کاتبان و فریسیان این گونه تعلیم می دادن. اونها طوری اون رو تفسیر می‌کردند و به کار می که گویی موسی چنین گفته است آیا نمونه دیگری از این سوراخ دارید؟ در نظر یهودیان دوست یهودی همسایه شما بود و هر کس دیگری دشمن. به یاد بیارید این سوال رو در حالی که عیسی اصل سامری نیکو رو تعلیم میداد وکیلی از او پرسید همسایه تو کیست؟ این سوال امیقی بود چرا که اخلاقیات آن در کتب مقدسه تعلیم داده نشده بود. اما تنها این بود دوست یهودی خود را دوست بدار و نه کسی دیگر. هر غیر یهودی در دنیا دشمن شماست و حداقل این اشاره شده که همسایه یهودی خود را دوست بدار اما از هر کس دیگر نفرت داشته باش خب مسلمان تعالیم ایسا انقلابی هست اما وقتی او میگه اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فوش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید با روح شریعت هماهنگه حالا این بالاترین اخلاقیاتیه که تاکنون بیان شده و تعلیم داده شده یک بار دیگه من گمان نمی کنم تا زمانی که بعضی از این هایی رو که گفتیم درک نکنید این گونه تعالیم رو نخواهید فهمید اما اگر این دیدگاه ها رو مد نظر داشته باشید اون وقت این رو با آنها اضافه کنید انگیزه برای محبت کردن به دشمنان و واکنش نشان دادن به لعن کنندگان شما و کسانی که از شما نفرت دارند و کسانی که بر شما جفا می رسانن به روشی که عیسی گفت اینه تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید. توجه کنید که این تعلیم چگونه تموم میشه پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است می بینید تمام مقصود عیسی اینه که شبیه خدا باشیم. مانند پدر آسمانی خود پدر چگونه است نیکو او باران خدا را بر پارسایان و گناهکاران میباراند او آفتاب را بر عادلان و شریران میتاباند اگر کشاورزی شخصی شریر باشه او میذاره که آفتاب بر محصولات او بتابه حتی اجازه میده باران بر محصولاتش بباره اگر کشاورز خوب باشه با او هم این کار رو میکنه دانان به اون فیض آم میگن اما رومیان فصل پنجم به ما میگه در حالی که ما دشمنان خدا بودیم، او آنقدر جهان را دوست داشت که پسر یگانه خود را فدا کرد و او را به جهان فرستاد تا بر صلیب مسلوب بشه و در راه ما بمیره. اساس چیزی که او میگه این هست: "پس کامل باشید چنانکه پدر شما که در آسمان است کامل." حالا کلمه کامل تنها به معنی کامل بودن نیست، بلکه به معنای بالغ بودن، کامل بودن و هر آنچه که خدا از خلقت شما میخواد هست. اما کلمه کامل شما را اذیت میکنه برای یک دقیقه اون را رها کنید و در حالی که به آیه 48 نگاه میکنید بر این عبارت تاکید کنید. پس همانگونه باشید که پدر شما در آسمان هست. کلمه کامل را از ابتدا و انتهای جمله بردارید و بدونید که آنچه که عیسی قصد داشت تعلیم بده تنها این بود و این چکیده تعلیم درباره روح شریعته. پس آنگونه باشید که پدر آسمانی شما هست درست مثل خدا باشید این به نظر غیر ممکن میرسه و مسلما تا زمانی که انجیل مسیحی تحقق پیدا نکنه غیر ممکن هست شما میبینید که پویاترین تعلیم عهد جدید در انتهای تعالیم میاد در رسالات و پس از پنتیکاست پویاترین تعلیم عهد جدید چیه؟ برای من این هست مسیح در شما امید جلاله این حقیقت که مسیح میتواند در شما باشه این حقیقت که شما میتونید در مسیح باشید این حقیقت که شما با یکدیگر میتونید به حیات ادامه بدید برای من این پویاترین تعلیم عهد جدیده. اگر این درست نباشه پس تعالیم اخلاقی عهد جدید تنها ما رو به مسخره میگیرن و کاری جز ناامید کردن نمی کنن و اینکه احساس بدی نسبت به خود داشته باشید. اما توجه کنید که در کل عهد جدید تعلیمی وجود داره که میتوان اون رو استنباط کرد و این تعلیم چیه وقتی پولس رسول در افسوسیان باب پنج میگه ای شوهران زنان خود را محبت نمایید چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد وقتی پولس میگه محبت نمایید چنانکه مسیح هم کلیسا را محبت نمود پولس در واقع همون سخن مسیح رو در اینجا میگه به مانند مسیح باشی حالا آیا این امکان پذیر هست؟ من معتقدم که به خاطر پویاترین تعلیم عهد جدید این کار ممکنه مسیح در شما و شما در مسیح پولس رسول در کولسیان باب یک این طور میگه خدا مرا برگزید تا سری سر را به کلیسا بگویم و آن سری سر نست است مسیحی که در شماست تنها امید شماست آیا تا به حال این امر برای شما رخ داده مسلما اگر این معجزه بزرگ در جای خود رخ ندهد تعلیم عهد جدید غیر ممکن خواهد بود خندهدار خواهد بود اینکه مسیح در شماست و شما در مسیح با یک دیگر هستید ببینید پویاترین تعلیم عهد جدید حقیقت داره و این معجزه در زندگی شما و من امکانپذیر هست این همان چیزیه که در بالاخانه می‌بینیم وقتی عیسی این حقیقت بزرگ رو به رسولان میگه عیسی میگوید پس از اینکه شما را ترک کردم حتی از قبل هم به شما نزدیکتر خواهم بود چون که من در شما خواهم بود و شما در من درست مثل شاخه‌های تاک که به تاک وصل هستند. ما به هم دیگر متصل خواهیم بود به طوری که این حقایق از تاک به شاخه هایی که شما هستید منتقل می شوند و در انتهای شاخه میوه می, می آورید. من معتقدم که در اینجا تعلیم اینه که آنچه عیسی در این دو عبارت میگه امکان پذیر هست اطاعت از دو پاراگراف آخر متا باب پنج به همان اندازه که شوهر می تواند همسر و خانواده خود را محبت کند امکانپذیر هست. حتی میتواند مثل مسیح باشد. زیرا مسیح در آن شوهر هست و آن شوهر میتواند در مسیح باشد و آن شوهر و پدر در مسیح هست. این نه تنها ممکن است بلکه به نوعی میتوان گفت که این شیوه طبیعی زندگی مسیحیه. اینجا روش واکنش یک مسیحی متعارف در مقابل شریر در این دنیا و افراد شریر این دنیا مثل دشمنان رو میشدید. وقتی شما رو میزنند وقتی بر شما اقامه دعوامی کنند اگر از شما چیزی بخواهند، اگر بخواهند چیزی از شما قرض بگیرند، هرگاه که بر شما جفا برسانند یا لعنت کنند یا از شما متنفر باشند چگونه به با آنها پاسخ میدهید؟ مسلما شما نمیتونید نحوه رفتار اونها رو به کنترل خود در بیارید. تنها چیزی که می کنترل کنید واکنش خودتون نسبت به اون حکم یا تعلیم صرفاً این هست. عیسی مسیح خدا در جسم بود. او به این دنیا آمد تا راه حل خدا و پاسخ خدا را به اجرا در بیاره. به یاد داشته باشید، هدف کلی از این گذشت کردن از حق خود این بود که راه حل ها و پاسخ ها را به کار همون هایی که در نظر خدا دقیقا همانطور که مسیح با اتحاد با خدا راه حل و پاسخ بود. حالا او در اینجا به طور مفصل میگه اگر شما واقعا پسران پدر آسمانی هستید اگر واقعا فرزندان او هستید پس مانند او باشید همان گونه که او در این دنیا در مقابل شرید واکنش نشان داد شما همچنین کنید دشمنان خود را دوست بدارید و این روشی که شما میتونید پاسخ و راه حل عیسی برای این دنیا باشید دوستان مستشکریم که به این درس گوش کردین و در این پیغام ها با ما همراه هستین که به ما تعلیم میدن چگونه شاگرد حقیقی عیسی مسیح باشه. امید ما اینه که این درس ها به شما کمک کنه تا در دانش کتاب مقدسی رشد کنین و معانی کاربردی اون رو درک کنین و در زندگیتون به کار بگیرین. اون درس ها بخشی از دانش کدیه کتاب مقدس هستن و دعای ما اینه که توسط تعلیم و درک کلام خدا شاگردی بشید که خدا میخواد بشید. تا برنامه بعدی دعا میکنی فیض و رحمت ناجی و خداوندمون مون ایسای مسیح با شما و خانوادی شما باشه و در خدمت به اون و دیگران به شما شادی و آرامش بده.